دیگر چیزی از جاده نمی دیدم و میدم چنان می که حال تهوع به من دست میداد. وقتی امیر هم با ملاقمت شروع به صحبت و نصیحت کرد و پس حرفهایش هم غیر مستقیم حمایت از محمد بود و محکوم کردن رفتارهای من طاقتم بیشتر از قبل تاک شد. احساس بی پناهی و مظلومیت می کردم. و خنجر تیزی که به قلبم نیش میزد، دنیا را به چشمم تیر و تار می کرد. سرزنش های امیر حالم را از آنکه بود خراب تر کرد. به خاطر خورد شدن غرورم جلوی دیگران به خاطر دردی که می کشیدم و به خاطر بی دلم می تلافی کنم و نمیدانستم چطوری. نفسم بالا نمی آمد که حتی کلمه ای در جواب امیر حرف بزنم. و هرچه بیشتر فکر می کردم حالم بدتر می شد پیچو خمهای مداوم جاده و سرعت ماشین حالم را بدتر کرد حس کردم حالم دارد به هم می خورد. با دست به امیر اشاره کردم که ماشین را نگه دارد و همونطور که جلوی دهانم را با دست گرفته بودم از ماشین با قدم تند دور شدم از ماشین امیر و آقا رزا هم که پشت سرمون بود گذشتم و با عجله خودم را به گوشه جاده که پار از نیه بلند بود رساندم دلم به هم میخورد ولی بالا نمی آوردم فاطمه خانم و امیر و محمد داشتن نزدیک میشدند که با دست اشاره کردم نیایند محمد اما آمد دستش را روی شانه ام گذاشت و خم شد و با نراهجی گفت لازم اعصاب من و جسم خودتو داغم کنی و به این روز بیفتی؟ همیشه وقتی حالم بد میشد، از او فقط توجه و نگرانی و ناز و نوازش می دیدم. و حالا این برخوردش برایم خیلی سنگین بود. با خود گفتم تازه طلب کارم هست. دستش را پس زدم و از جایم بلند شدم و رویم را برگرداندم. فقط صدای هایش را می شنیدم و به نظرم آمد او هم هنوز عصبانی است. با صدای فاطمه خانم مجبور شدم باز به آن سمت برگردم. فاطمه خانم در حالی که لیوانی آبقن دستش بود نزدیک شد و پرسید. مهناز جان بهتر شدی؟ شاید گرم زده شدی؟ محمد آخر یه دکتر درست حسابی برای این ناراحتی مهناز نرفتی نه؟ نگاهم به چشمهای عصبانیش افتاد. دلم میخواست خفش کنم. گفت. چرا؟ میگن نباید عصبی بشه. همین. حالا که عصبی شده؟ آن؟ آره مهناز؟ چیزی شده؟ محمد اگه میدونه حالش خوب نیست میخوای برگردین؟ یا شماها برگردین؟ نمیدونم. ببین خودش چی میگه؟ فاطمه خانم وانمود میکرد خیلی تعجب کرده. ولی میدانستم که از رفتارهای ما تا حالا حتما فهمیده که بین ما شکراب است. گفت ای چرا من بپرسم؟ مگه با هم قهرین؟ محمد جوابی نداد و زمین را نگاه کرد. فاطمه خانم این بار از من پرسید. آره من قهرین؟ این اوقات تلخ هر دوتون هم برای همینه نه؟ من هم مجبور شدم سرم را زیر بیندازم و سکوت کنم. حرفی برای زدن نداشتم. فاطمه خانم با لحنی دوستانه گفت. خجالت بکشین تقصیر ما هست که گذاشتیم این همه وقت نامزد بمونین شماها که اگه عروسی کرده بودین الان یه بچه هم داشتین معلومه دیگه نامزد زیادی باعث میشه خوشی بزنه زیر دل آدم برگردیم تهرون من یکی که نمیرم اسفهان تا شماها رو بفرستم خونتون اگه نه صدای آقا رزا حرفش را قطع کرد که میگفت محمد بچه می گن میگن همینجا ناهار بخوریم و حرکت کنیم چطوره؟ محمد شانه هایش را بالا انداخت و گفت برای ما فرقی نمیکنه. بیام کمک فاطمه خانم با خنده گفت لازم نکرده شما اول کمک خودتون بکنید بعد بیایی و در حالی که انگشتش را به تهدید رو به محمد تکان میداد گفت مگه من پام به تهرون نرسه چون برای آشی میپزم یه وجب روغن روش بشه. حالا میبینی. بعد خندان دور شد. محمد ساکت و سرد کنارم نشست. و چند دقیقه بعد پرسید؟ بهتر شدی؟ یکم. قرصتو نیوردی؟ نه. صدای خنده بلند خسرو که داشت چوب جمع میکرد و نزدیک ما شده بود باعث شد هر دو یک که بخوریم. خسرو با لحنی کنای آمیز گفت ببخشید مزاحم شدم. باز هم محمد حتی به خودش زحمت نداد کلمه ای در جوابش بگوید و در حالی که رویش را رو به طرف من میکرد زیر لب فقط گفت مرده مزخرف. و به من که از رفتارش ماتم برده بود گفت گه حالت بهتره پاشو بریم. از جا بلند شد و با باطعنه و لحنی تلخ گفت. دستتو نمیگیرم که حالت دوباره به هم نخوره. دوباره خون به مغزم حجوم آورد. برای اولین بار دلم میخواست خفش کنم و فریاد زنان بپرسم: چرا با من اینطوری رفتار می کنی؟ از نگاهم هم نمیدانم چه خواند که با زهر خندی تلخ گفت؟ اگه ممکنه بقیه این بازی و بزا خونه، جلوی اینو دیگه بیشتر از این ادامه نده، کافیه. راه افتاد و من هم به ناچار راه افتادم و سعی کردم قصه و خشم و عذابی رو که میکشیدم کشیدم با قدمهای محکمی که به زمین می‌گذاشتم، زیر پا له کنم. ولی نمی‌شد. شد. با مهربانی جلو آمد و پرسید، حالت بهتری یا نه؟ دوست نداشتم حتی نگاهش کنم یا جوابش را بدهم و فقط به تکان دادن سرم اکتفا کردم. گوشه پتویی که پهن کرده بودند نشستم و زانوهایم را در بغل گرفتم و به بقیه نگاه کردم. محمد داشت به آقای و امیر کمک میکرد که سعی داشتن اجاقی برای گرم کردن غذا درست کنند و منتظر چوبی بودند که قرار بود جواد و خسرو بیاورند. امیر داد زد. جواد، خسرو، پس این چوب چی شد؟ چند دقیقه بعد سر و کلی خسرو و جواد پیدا شد. خسرو همانطور که یک بغل چوب روی دستایش بود و یک دست گل وحشی خیلی قشنگ هم روی چوب ها گذاشته بود داشت نزدیک میشد. سریا گفت. چه گلی قشنگی؟ از کجا کندی؟ خسرو با دست پایین جاده را نشان داد و گفت اون پایین؟ قشنگه؟ من همانطور که چانم روی زانوهایم بود بی گفتم خیلی خسرو فوری گلها را دو دسته کرد دسته ای را تعارف سرعیه کرد و دسته دیگر را به من داد و در جواب امتناع من گفت قابل شما را اصلن نداره یک آن چشمم به محمد افتاد که با نگاهی سرشار از نفرت به خسرو نگاه میکرد و من بیشعور برای اینکه هرسش بدهم قلیستر از آنکه باید از خسرو تشکر کردم با خود گفتم بکسار بفهمد من چه کشیدم تا بعد از این نگوید این فکرها احمقانه است خدایا چقدر نفهم و کودن بودم که درک نمی کردم حس حسادت زنانه کجا و غیرت و تعصب مردان کجا؟ لجبازی همیشه تنها سلاح آدمهایی است که منطق و حرف حساب سرشان نمی شود و من نمی فهمیدم که استفاده از این سلاح آن هم توی زندگی زن و و در مورد مسئله اینقدر حساس و اساسی تا چه اندازه می تواند و ویران کننده باشد. نادانست خودم را لگت مال می کردم و زیر سؤال می بردم. و تصویر ذهنی محمد را از خودم مخدوش میکردم تا به او بفهمانم که شکی که کرده درست است. آری، من با ذهنی کور و اعمالی احمقانه نادانسته به او ثابت میکردم در انتخابم اشتباه کرده. این بود که هرچه او را در عذاب و مشوش میدیدم فکر میکردم با تحریک حس حسادتش دارم موفق میشدم. برای همین در رفتار زشتم پافشاری کردم. به حرف‌های بی‌مزه خسرو توجه نشان می‌دادم و می‌خندیدم در حالی که شاید به نصف بیشتر حرفایش اصلا گوش نمی‌کردم چون فقط چشمم به خسرو بود تمام حواسم متوجه خود محمد بود ولی در نهایت آنچه دیده می‌شد ظاهر رفتار ناشایست من بود نه افکار و درون وجودم سوراییو برخلاف من مدام سعی می کرد با جوابهایی که به خسرو میداد او را از رو ببرد و شاید به همین علت هم بود که خسرو بیشتر روی صحبتش به طرف من بود. می فهمیدم که محمد چقدر عصبی شده ولی به روی خودم نمی آوردم. می خواستم حس کند حسادت چقدر دردناک است تا دیگر انقدر راحت نگوید به خاطر این فکر احمقانه که فکر می کنی دوست دارم سوراییو رو ببینم و پیش خودم فکر میکردم دارم برنده می شدم. خافل از اینکه این بردن عین باختم بود و خبر نداشتم بالاخره وقت حرکت رسید محمد برگشت توی ماشین خودمان و من خوشحال از اینکه با هم تنها شده بودیم توی دلم ذوق میکردم که دیگر آشتی میکنیم. حواسم به هیچ چیز نبود غیر از تنها شدن دوباره با او. از احساس اینکه کنارم نشسته بود و نزدیکم بود قلبم آرام گرفته بود. همه منتظر بودم که سکوت را بشکند و حرف بزند. ولی او مثل سنگ، ساکت و سرد نشسته بود و با اخمهای درهم جلو را نگاه می‌کرد. انگار نه انگار که من آنجا هستم. هرچه انتظار کشیدم بیفایده بود. خیال حرف زدن نداشت. بالاخره خودم مجبور شدم صدایش بزنم. بی اختیار لحنم انگار حالت التماس و خواهش گرفت و همانطور که صدایش می زدم دستم را رو روی دستش که به دنده بود گذاشتم. محمد اما هیچ اکسول عملی نشان نداد. دوباره صدایش زدم. محمد؟ بدون اینکه رویش را برگرداند با لحنی سرد و جدی گفت. بله. این بله اینقدر سرد بود که حرفها توی دهانم ماسید. همه ی شوقی که برای آشتی داشتم یخ زد و هرس و لج با هدتی بیشتر از قبل جایش را گرفت. دستم را با خشونت از روی دستش برداشتم و همانطور که رویم را رو به سمت پنجره می شیشه را پایین کشیدم تا بلکه جریان هوا صورتم را که آتش گرفته بود آرام کند. با چندتا تا از گل‌های خسرو را که پشت شیشه ماشین گذاشته بودم پخش کرد و محمد با عصبانیت دستی گل‌ها را برداشت و از شیشه سمت من به بیرون پرتاب کرد و گفت جای این آشغال‌ها اینجاست برایم اصلا مهم نبود ولی نقطه ضعف او را فهمیده بودم برای همین با عصبانیت برای اینکه حرس دلم را خالی کنم گفتم اونا آشخال نبود. من میخواستم اشون. نگاه عصبانیش چنان ترسناک شده بود که مثل کارت تا مغز استخانم کرد و من باز از ترس خفه شدم و به بیرون خیره شدم. احساس میکردم دارم محمد را از دست میدهم و این برایم دیوانه کننده بود. در ورته ای از رنج و قصه و حیرانی و درماندگی دست و پا میزدم و نمیدانستم باید چه کنم. فقط اگر یک خورده عاقل بودم یا لآقل او اینقدر بد خلقی نمیکرد تا من راه برگشت و تغییر رفتار را سد نبینم چقدر اوضاع فرق می سیر وقایع طوری شده بود که دیگر نمی توانستم بخواهم و همی بود که دو روز و دو شب بعدی جان کندم و بروگم مثل یک قرن گذشت تعم تلخ او را جلوی دیگران چشیدم و نتوانستم هیچ کاری انجام دهم جز اینکه مدام برای تمام شدن آن مدت در دلم لحظ شماری کنم. هنوز هم بعد از سالها وقتی با آن دو روز فکر می کنم جز تصاویر قبار آلود و گنگ چیزی به یاد نمی آورم. از آن همه زیبایی طبیعت و مناظر زیبا و جاهای مختلف انگار هیچ چیز ندیدم. فقط عذاب کشیدم. و دقیقه شماری کردم تا موقع برگشتم برسد.